مصنویه، معنوی مولوی برنامه سیوه هفتم وحی آمدن موسا را علیه السلام در عذر آن شبان بعد از آن در سر موسی حق نهافت، رازهایی که نمی آید بگفت بر دل موسی سخنها ریختند دیدن و گفتن به هم آمیختند چند بی خود گشت و چند آمد بخواد چند پرید پر از ازل سوی ابد بعد از این گر شهر گویم ابلهی است زان که شرح این ورای آگهی است ور بگویم عقل ها را برکند ور نویسم بس قلمها ها بشکند چون که موسی این عتاب از حق شنید در بیابان در پای چوپان دوی برنشان پای آن سرگشته رامد. گرد از پره بیابان برفشاند. گام پای مردم شوریده خود. همز گام دیگران پیدا بود. یک قدم چون رخز بالا تانشیب. یک قدم چون پیل رفته بروری. گاه چون موجی بر افرازان علم گاه چون ماهی روانه بر شکم گاه بر خاک نبشته حال خود همچون رمالی که رملی برزند عاقبت دریافت او را و بدید گفت مجده که دستوری رسید هیچ آداب و ترتیب مجو هرچه می خواهد دل تنگت بگو کفر تو دین است دینت نور جان ایمنی وستو جهان در امان ای معاف یفعل الله ما یشا بی مهابا زبان را برگشا گفت ای موسا از آن بگذشتم من کنون در خون دل آغشتم من ز صدره منتها گفتم صد هزاران ساله زانسو رفتم تا زیانه برزدی اسبم بگشت گنبدی کردو زگردون برگذشت محرم ناسوت ما لاهوت باد آفرین بر دست و بر بازوت باد حال من اکنون برون از گفتن است این چی میگویم گویم نه احوال من است نقش میبینی که در آینه است نقش تستان نقش آن آینه نیست دم که مرد نائی در نای کرد در خور نای است نی در خورد مرد هان و هان گر همد گویی گر سپاس همچون نافرجام آن چوپان شناس همدا تو نسبت بدان گر بهتر است لیک آن نسبت به حق هم ابدر است چند گویی چون قطا برداشتند کی نبود استان که نبود است آنکه میپنداشتند این قبول ذکر تو از رحمت است چون نماز مستحازه رخصت است با نماز او بیالوده است خون ذکر تو آلوده تشبیه و چون خون پلید است و به آب می رود لیک باطن را نجاست ها بود کان به غیر آب لطف کردگار کم نگردد از درون مرد کار در سجودت کاش روگردانی معنی سبحان ربی دانیه که سجودم چون وجودم ناسزا مربدی را تو نکویده جزا این زمین از حلم حق دارد اثر تا نجاست برد و گلها داد بر تا بپوشد او پلیدی های ما در عوض بر روید از ویغون چه ها پس چو کافر دید که در داد و جود کمتر و بیمایتر از خاک بود از وجود او گل و میوه نراست جز فساد جمله پاکی ها نجاست گفت و پس رفتم من در زهاب حسرتا یا لیتنی کنتو تراب کاش از خاکی سفر نگزیدمی همچه خاک دانه میچیدمی چون سفر کردم مرا راه آزمود، زین سفر کردن رهاوردم چه بود. زن همه میلش سوی خاک است، کو در سفر سود نبیند پیشرو. روی واپس کردنش آن هرس و آز، روی در ره کردنش صدق و نیاز، هر گیا را کش بود میل اولا در مزید است و حیات و در نما چون که گردانید سر سوی زمین در کمی و خشکی و نقص و غبین میل روحت چون سوی بالا بود در تزاید مرجعت آنجا بود ور نگونساری سرت سوی زمین، آفلی حق لا یحب بل آفلین. پرسیدن موسی علیه السلام از حق تعالی سر غلبه زالمان، گفت موسا ای کریم کارساز ای که یکدم ذکر تو عمر دراز نقش کژمش دید در آب و گل چون ملایک اعتراض کرد دل که چه مقصود است نقش ساختن و اندرو تخم فساد انداختن آتش ظلم و فساد افروختن مسجد و سجده کنان را سوختن مایه خونابه و زردابه را جوش دادن از برای لابه را من یقین دانم که عین حکمت است لیک مقصودم عیان و رویت است آن یقین می گویدم خاموش کن هرسه رویت گویدم نه جوش کن مرملایک را نمودی سرخیش، خویش نوش همه عرضت بنیش عرضه کردی نور آدم را عیان بر ملایک گشت مشکلها بیان حشرتو گوید که سر مرگ چیست میوهها گویند سر برگ چیست سر خون و نطفه حسن آدمی است سابق هر بیشی آخر کمی است را اول بشوید بی وقوف آنگهی بر وی نویسد او حروف خون کند دل را و و اشک مستحان برنویسد بر وی اسرار آنگهان وقت شستن لوح را باید شناخت که مران را دفتر خواهند ساخت چون اساس خانه می افگنند اولین بنیاد را بر می کنند گل برآرند اول از قهر زمین تا به آخر برکشی ماه معین از حجامت کودکان گیریند زار که نمیدانند ایشان سر کار مرد خود زر می دهد حجام را می نوازد نیش خون آشام را می دود حمال زیبار گران می رو باید بار را از دیگران جنگ حمالان برای بار بین، این چونین است اجتهاد کاربین بین. چون گرانی ها اساس راحت است، تلخ هم پیشوای نیمت است. حفت الجنه به مکروهاتنا، حفت نیران و شهواتنا تخمه مایه آتشت شاخه تر است. سوخته آتش قرین کوسر است. هر که در زندان قرین مهنت است، آن جزای لقمه و شهوت است. هر که در قصر قرین دولت است، آن جزای کارزار و مهنت است. هر کرا دیدی به ذر رو سیم فرد دان که اندر کسب کردن صبر کرد. بی سبب بینت چو دیده شد گذار تو که در حسی سبب را گوش دار. آن که بیرون از تبایع جان اوست، منصب خرق سببها آن اوست بیسبب بیند نه از آب و گیا چشم چشم معجزات انبیا این سبب همچون طبیب است و علیل این سبب همچون چراغ است و فتیل شب چراغت را فتیل نو بتاب پاک دانزین ها چراغ آفتاب رو تو کهگل ساز بحر سقف خان سقف گردون را ز کهگل پاک دان آه که چون دلدار ما غم سوز شد خلوت شب در گذشت و روز شد. جز جزب شب جلوه نباشد ماه را. جز به درد دل مجو دلخواه را. ترک ایسا کرده خر پرورده ای. جرم چون خر برون پرده ای. تاله ایساست علم و معرفت، تاله خر نیست، ای تو خر سفت ناله خر بشنوی رحم آیدد، پس ندانی، خر خری فرمایدد. رحم بر ایسا کن و بر خر مکن، تبع را بر عقل خود سرور مکن، تاب راحل تا بگیرید زار زار تو از او بستان و وام جان گذار سالها خربنده بودی بس بود زان که خربنده ز و پس بود زخر و هنه مرادش نفس توست کوب آخر باید و عقلت نخست هم مزاج خر است این عقل په فکرش این که چون الف آرم بده است. آن خر ایسا مزاج دل گرفت. در مقام عاقلان منزل گرفت. زان که غالب عقل بود و خر ضعیف از سوار زفت گردد خر نحیف و ضعیفی عقل تو ای خربه ها این خر پجمرده گشته است گرز ایسا گشته ای رنجور دل هم از او رسد او را محل چونی ای ای ساوی ای سادم زرنج که نبودن در جهان بیمار گنج. چونی ای ای ساز دیدار جهود، چونی ای یوسف ز مکار و حسود. تو شب و روز از پای این قوم غامر، چون شب و روزی مدد بخشای عمر. چونی از سفرایان بی هنر چه هنر زایت ز سفرا درد سر تو همان کن که کند خورشید شرق ما نفاق و حیله و دزدی و زرق تو اصل ما سرکه در دنیا و دین دفع این سفرا بود سرکنگبین سرکف زودیم ما قوم زهیر تو اصل بفزا کرم را وامگیر این سزید از ما چنان آمد ز ما ریگن در چشم چف زاید. اما آن سزد از تو هیا کهل عزیز که بیابد از تو هر ناچیز چیز زاتش این ظالمانت دل کباب از تو جمله اهد قومی بود خطاب کان اودی در تو گر آتش زنند این جهان از عطر و ریحان آکنند تو نه آن عودی آتش کم شود تو نه آن روحی کثیر غم شود او سوزد کان او از سوز دور باد کی حمله برد بر اصل نور ای ز تو مر آسمانها را صفا ای جفای تو نکوتر از وفا زانکه از عاقل جفای گر رود از وفای جاهلان آن به بود گفت پیغمبر عداوت از خرد بهتر از مهری که از جاهل رسد رنجانیدن امیر خفته را که مار در دهانش رفته بود آقل بر اسب می آمد سوار در دهان خفته می رفت مار آن سوار آن را بدید و می شتافت تا رماند مار را فرصت نیافت چونکه از عقلش فراوان بود مدد، چند دبوس قوی برخفته زد. برد او را زخم آن دبوس سخت، زو گریزان تا بزیر یک درخت. سیب پوسیده بسی بد گفت از این خور ای بدرد آویخته. سیب چندان مرورا در خورد داد که باز بیرون می فتاد بانگ می زد که امیر آخر چرا قصد من کردی تو نادیده جفا گر تو زسل است با جانم ستیز تیغ زن یک بارگی خونم بریز شوم ساعت که شدم بر تو پدید، ای خنک آن را که روی تو ندید، بی جنایت، بی گناه، بی بیش و کم، ملحدان جایز ندارند این ستم، میجهد خون از دهانم با سخن. ای خدا آخر مکافاتش تو کن، هر زمان می گفت او نفرین نو اوش می زد کن در این صحرا بدو زخم دبوس و سوار همچوباد می دوید و باز در رو می فتاد ممتلی و خوابناک و سست بود پا و رویش صد هزاران زخم شد تا شبانگه میکشید و می گشاد سفرا ز صفرا شدن بر وی فتاد زو برآمد خورده ها زشت و نکو مار با آن خورده بیرون جست زو چون بدید از خود برون آن مار را سجده آورد آن نکو کردار را سهم آن مار سیاه زشت زفت چون بدید آن دردها از وی برفت گفت خود تو جبرئیل رحمتی یا خدایی که ولی نعمتی ای مبارک ساعتی که دیدیم، مرده بودم جان نو بخشیدیم. تو مرا جویان مثال مادران من گریزان است تو مانند خران خر گریزت از خداوند از خری صاحبش در پی ز نیکو گوهری نس سود و زیان می جویدش لیک تا گرگش ندررت یاددش ای خنک آن را که بیند روی تو، یاد رفتد ناگهان در کوه تو. ای روان پاک بستوده تو را، چند گفتم جار و بیهوده تو را. ای خداوند و شهنشاه و امیر، من نگفتم، جهل من گفت، آن مگیر. شمه از حال اگر دانستمی گفتن بیهوده کی تانستمی بس سنایت گفتمی ای خوش خسال گرمرای گرامز می گفتی زهال لیک خاموش کرده می آشوفتی خاموشانه بر سرم می کوفتی شد سرم کالی و عقل سر بجاست. خاصه این سر را که مغزش کمتر است. افو کن ای خوب روی خوب کار. آنچه گفتم از جنون اندر گذار. گفت اگر من گفتم رمز از آن زهره تو آب گشتی آن زمان. گر تو را من گفتمی او صاف مار ترس از جانت برآوردی دمار مصطفی فرمود اگر گویم براست شرح آن دشمن که در جان شماست زهره های پردلان هم بردرد نه رود ره نه غم کار خورد نه دلش را تاب ماند در نیاز، نه تنش را قوت روزه و نماز. همچو موش پیش گربه لا شود، همچو بر پیش گرگ از جا رود. اندرو نهیله ماند، نه روش، پس کنم نا گفتتون من پرورش، همچو بو بکر ربابی تن زنم، دست چون داوود در آهن زنم. تا محال از دست من حالی شود، مرغ پربرکنده را بالی شود. چون ید الله فوق ایدی هم بود، دست ما را دست خود فرمود اهد قسم را دست دراز آمد یقین برگزشت آسمان هفتمین دست من بنمود برگردون هنر مقریا برخان که انشق القمر این صفت هم بهر زعف عقل هاست با ضعیفان شرح قدرت کی رواست خود بدانی چون براری سرز خواب، ختم شد و الله و عالم به ثواب. مرترا نه قوت خوردن بوده، نه ره و پروای قی کردن بوده. می شنیدم فخش و خر می راندم، رب یسر زیر لب می خواندم از سبب گفتن مرا دستور نه، ترک تو گفتن مرا مقدور نه، هر زمان می گفتم از درد درون، عهد قومی انهم لا علمون، سجده ها می کرد آن رسته از رنج، کی سعادت ای مرا اقبال و گنج، از خدا یا بی جزاها ای شریف قوت شکرت ندارد این ضعیف شکر حق گوید تو را ای پیش با. آن لب و چانه ندارم بان نوا دشمنی آقلان زینسان بود زهر ایشان ابتهاج جان بود دوستی ابله بود رنج و زلال، این حکایت بشنو از بحر مثال. برنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند.